اگر امکان داره در مورد آیت الله حسنزاده عاملی و حالاتشون یه چند جمله بفرد مرحومه علامه حسنزاده رحمت الله علی در این حال که آلم بودن دنبال عمل هم بودن فرق امدهیشون با بعضی ها همین هست که هم علم داشت و دنبال کرده بود خیلی از رشته های قلوم یا بعضان غیر حوزوی و بهشون هندسه رو خوب میدونست حساب خوب میدونست استاد دیده بود برمو شعرانی رحمت الله علیه استاد حساب و هندسه و طراحی و اینا خوب میتونستن مثلا برای ساختمون طراحی کنن تا استادشون علامه تبا طب در فلسفه استادشون بود ایشون یه معماره یعنی یه مهندس تا متمام بودش مدرسه حجتی یه قوم رو علامه تبا طب تبا تبایی کردن خودشون هم نظارت میکردن تا ساخته شد همه پولی نزارت شد نگیری چون پولی نبود امای طول حجت میگی من چند تا نقشه وقتی این مدرسه رو میخواستم بسازم بهم دادن نپسندیدم ایشون یه نقشه ای داد علام تجوتبویی طب دیدم خیلی عالیه با طبق همون مدرسه ساخته شده الان مدرسه خیلی شکیل و خاصیه برای هر شهرستانی هر بستانی یه ساختمون ساخته اصفهانی ها تهرانی ها خراسانی ها تو محبته یه اصطلاح زمینی که حیاتی که داره ساختمان همه منفکه مشخص هر ساختمونی برای چه گروهی و چه مجموعیه در کنار این علومی که ایشون عمومن هم تخصیصیات گرفته بود اهل عمل هم بود دوست داشت که عامل هم باشه و تو این زمینه تلاش هم میکردن خداوندا ان شاء الله با ائمه اطهار علیهم السلام مشهورشون کنه ان شاء الله